زگردان زگردان آه... جنگی و ناماوران چو بحرام و چون زنگی شاوران همان پنج موبت از ایرانیان همون پنج موبت از ایرانیان همون پنج موبت از ایرانیان بر راختند اکثر کابیان به تا جمله بیرون شدند به فهلا سوی دشت هامون شدند تو گفتی که اندر زمین جای نیست که خاک او نل را پای نیست سرن اختر کاویان چون ماه درخشنده اندرمیان میان سپهلا بیرون رفت برون رفت, رفت. کابوس شا یکی تیز برگشت گرد سپاه یکی آفرین کرد ارمایی کی. ای نام داران فرخونده دی مبادا جز از بعد شده تیره دیدار بدخواهتان <تصفيق> به نیه و و تندرستی شدند به پیروزی و شاد باز آمدن بزن جایگه پوز بر پی و به گردان به برمود و خود برنشد دو دیده پر از آب بوز همین بود یک روز با او براه سرانجام انجام مر یک را کنار گرفتند هر دوست ابر عبر بحار. زدیده همین خون گرفت سرانجام، مرد یک اگر را کنار گرفتن هر دو اینجا تمام شد چون عبر بحار زدیده هم میزمون خون فروغیختم اونتون عبر بحار میره به بیت بعدی برسیش یعنی مثل عبر بحار گریم کردن گریم کردنش کنم کشش نبهمیدم در بخیر زدیده همین خون فروغ ریختم بزاری خروش خروشی گواهی, هم... گواهی همی داد گواهی همی داد دل پرشدن که دیدار از آن پس نخواهد بودن چونین از کردار گردند در گهی نوش یابی از او گاه ز. سوی گاه فنها کابوس روی سیاواش عوالشکر جنگ جوی عوالشکر جنگجوی سفق را سوی زابل پتان کشید زابلستان زابل زاب... زابلستان زابلستان, زابلستان, زابلستان کشید چرا برای اینکه اگه زابل پتان بخونیم وضع میشه بر وضع چیلتن سوی دستان کشید همین بود یک ماه با رود و می به نزدیک دستان فرخونده پی گهی با همسند بودی می به دست گهی با زوازه زواره زواره زواره برادر رسل بر سخت دستان بودی جهی در شکار نیستان بودی میگه همون پنج از ایرانیان برفراختند اختر کاغیان اولا تو می‌سید که چیزو داری، آفرین فردوسی رو داری، م. یک مقاله‌ش راجع به درفش کار این رو اینجا تکثیر کن برای دوستان بهشون بده که مطالعه کنن برای اینکه خیلی چیز مهم این درفش کار است دیگر اینکه که قصه‌شو گفتم براتون که اون چرم پیشفند کاغه آهنگه رو گرفتن و گوهرنشانش کردن و اینو به نشان پیروزی میوردم در جنگ ها و این در بود همینطور تا حالا مال کیه من نمیتونم ولی دید معتقد بودن که این مالکاوی آهنگل اینا این بود تا در جنگ و عراب. در رسیدن عرب این درفت کاویانی افتاد دسته عراب و پار کردن و از بین بودنش در فارسی کمت کلمه داریم برای علم، یکیش درفشه. درفش، درفش که بیشتر، درفش کافیانی، به همون درفش معروفه و معروفترین اسم برای علم، همون درفش یکی دیگه اختره که میبینیم، اختر کافیان، اختر، علا من یه علمم هست علم، کلمه عربی که اونم در فارسی خیلی رایجه علم هم به من نشانه و در حقیقت این تیرق و این درفت شد که کردن از روش نشون داده می شد که اولا لشکر چقدره یعنی مثلا هر هزار نفری فرسوند یه دونه داشتن هم تعداد لشکر حد جده هم با نقشی که روی علم بود نشون داده می شد که این مال کیه برای اینکه پادشاه و سرداران هر کدوم روی درفششون روی علمشون یه نقش محصود بست یکی شیرفیکر بود برگ بعدا فردوسی میگه درفش مثل شیر فیکر، برگ فیکر اجده ها فیکر محصود این بود که روی علمش یکی نقش براد بود یکی نقش گور بود یکی نقش شیر بود یکی نقش اجده بود. بود انزا ارسام اینا ها با جایی که به روسی به تفصیل راجع این مطلب حرف میزنه در داستان رستم و سهراب به طور اختصار میدونیم که سهراب آمده بود غصش این بود که باباشو بشناسه و بعد قاصد ایران از مندب بره، قاصد توران هم از بین همه اینا رو بین دست پدرش، پدرش جا بشه، خودش بشه قهرمانه سپاه ولی از اون طرف افراسیاخ نمیخواست که این رستمو بشنستیم ولی که میخواستیم نتر جنگ بنوزی به هم بنابراین بود اکیدن که کسی, و... کسی رستمو به سهراب نشون نده از اون طرف هم، چون سهراب خیلی پهلوان بود یکی از سرداران ایران رو گرفتار میکنه به نام هجیر و این میگه که اگر تو راست بگیر من، من همه جور به تو عبت میکنم چیز میکنم ولی اگه دروغ بگی پدرت در میرم. میکشم میگه چه دروغ دارم بگم؟ میگه یکی یکی این چیزا رو بگو کیم؟ هم، پهلوانو. بعد ما مثل بلندی، سپاه ایران که بودن، میگه که اون خیمه ای که بالاش درفشه نمیدونم اجله ها پی کره اون ماله کی؟ اونی کی ماله کیه؟ کی مال کی؟ تمام این میگه به رستم چرا؟ دلیلش این بوده که فکر میکنه که این پهلوان با این قدرتی که من میدینم ممکنه روستم رو از بین ببره دو جنگ من اسم روستم رو نمیگم برای اینکه رستم کشته بشه لا اقل افسانه باقی بمونه یعنی این هنوز فکر کنه که رستم زنده است تا ایرونی یه خود خودشون جعمو جوفتن اینی که میگه نمیونه یه, یه پهلوانیشه که از چین اومده من ندیدم اصلا هر چی میگه این باید رستم باشه منو بگیرین از اینجا تیر سهراب بسنجید بعد خود رستم میاد میدون رستم روی همین فچ که من اگه خودم معرفی کنم به این و بعد تلفشم، بشم، کشته بشم در جنگ، روز ایرانی ها سیاه. بنابراین بهتره من نگم، میگه من یکی از نیزه دار روستان نوکرم، تو روستان روستان تو قابل نمیدونی بیا تو تو جنگ کنه. از این ارطا این از که به لطره صورا، پدرشو نمیشناسه تا وقتی کشته میشه وقتی پهلوشو با خنجرد دارید بعد سراب میگه که ولی پدر من میاد و انتقاه آنه میگه پدرت تو کیه بعد اینکه وکیل میمورد یه ساعت دیگه میگه پدر من رستم که اون وقتی حاضر رستم زمت سر خودشونه باقی یه به هر حال اونجا یکی یکی رو این هجیر بایی نیسته و سهراب ازش میپرسه این, این خیمه که این درفش مالکیه اون اونجا به تفصیل یکی یکی اینا رو میگه البته جاهای دیگر هم هست اما بیشتر از همه در داستان سهراب حالا ما برای علم خندین لغت داریم گفتم اختر رو گفتم درفش رو گفتم علم رو الان وقتا برایت هست نگاهم بی‌راحه است که نیست، پرچند پرچند من این علم نیست <تصفيق> این بیرق بگم یه کلمه سوی که داریم که این دوتا رو با هم اشتغال نکنیم پیدا، پیدا معرب کلمه پیادست. پیاده پیاده شفرنگ مورای شفرنگ یه پیش که بیشتره، هشت مورا پیاده، پیاده ما شد بیده و با بیره فنسره بو یا بیره به انظرم ترکی باشه ترکی باشه در اینکه فارسی کنگین، اما چطور شده؟ پرچم شده اسم؟ همه اینا رو گذاشتیم؟ این همه لغتی درست دارید همه رو گذاشتیم، پرچم چه اصلا یه نوع وحشی هست در ارتفاعات هند طرف های طبت و ها. <تصفيق> بیا که بعد مثلا خودشون زندگی پوستش کاملا سیاه سیاه خیلی خیلی براق. را نمیدونم توجه کردیم یا نه که اگه رنگ هایی که همجوری به نظر آدم سیامیت ببریم تو آفتاب بعضی هاشون رنگ سرخ مثلاً برین زیرش بعضی بنفش داره سیاه سیاه میزه بعضی هست که کاملاً سیاه این گاف تمام پوستش کاملاً سیاهه و موهای خیلی برراغ داری برخ میزه مثل ابلیشم بهش میزن قلب آق یا کش به معنی الانم الان که یه خود جنسش پایین تر و متوسط تره بشن. میگن کج. در فارسیل میگن کج. کج. عبریشن. یعنی عبریشن. قشقاب. یعنی کشگاب. یعنی گاب عبریشن. به دلیل همین زیبایی پوست. این دومش. دوم درازی داره بعد ته دومش. یه دسته مو خیلی قشنگ و خیلی چیز یه دسته زیاد مو ته ته دوم هست موهای دراز براغ یا خیلی قشنگ اون موی ته دوم این گابو بشینگم پرچند و این رو مباهک می‌دروسن، به سال نیچ می‌گرفتن. بنابراین می‌رفتن، این گاول بعد رو شکار می‌کردن، ببر کچه و تای دومش رو ببرن و علمشون آبید می‌کنن. این دومش مثلا، از این دومگاه رو باشه، اصلا این جبینی از, از این بعد می اینجا این در انتهای دوم چیز چیزی داره که نمی دونم بعضی پرده های اعیان و اشرافی رو این بند پرده آخرش منگوله داره منگوله داره این منگوله از روی این دومهیس های و برای همین برای همین اصطلاح خوجسته بودن به فالی میگه این سیاه اینا به علم آویزون میکردن بنابراین هر علمی یه پرچم داشته حافظ میگه که به سالن نشون میگه میگه زلف زلف خاتون زفر شیفته پرچم پست پرچم اگه شباهت موی، ریخته به خانومی ندیسته باشه که اینو ظلف خواهدونی داد به علم مثل چیزی هستی؟ پرچم اون منگوله هست، اون دومگاه تبوتی هیست که برای تیمون و تبروک می آویختن به علم گویا لفظم مغلی و ترکی ایناست، فارسی هم نیستی در دوره پهلوی اول همه اون لغات رو گذاشتن پرچم گرفتن منی علم و رایت و درهبش حال که درست نیست و پرچم همون میکرمز کردیم <تصفيق> یکی از مشکلاتم این است که اگه ما پرچم و معنی علم بگیریم اونوقت معنی بسیاری از این بهتر است نمیتونم این برای اینکه تا دوره ناصرالدین دینشاه پرچم به همین معنی به کار رفتیم میگه سروش اسمانی میگه از اثر فتح میر باد سمرغند رایت شهر را و گیر به پرچم یعنی باز سمرغم به پرچم علم شاه میوزید. بنابارین پرچم یه جزدی بوده از علم. توجه کردیم. به این دلیل، در شاهنامه حتی یک بارم پرچم، یعنی علم، به کار نرفته. من الان یادم نیست که حتی اصلا کلمه پرچم در شاهنامه به کار رفته باشی یا نه. توی باید من درستم ولی خیلی سهلی برای اینکه شما نام ها اندکس دارن من اینجا راجب اندکس ولف هم براتون بگم این برای اینکه شما میرید بیرون، اینجا دانشگاه خارجیه یعنی که به زبون غیر فارسی درست میکنند یه مرد دانشمند یهودی آلمانی بوده به نام ولف فتبختانه این مرد یهودی در روی هیتلر هم زندگی می‌چند. یعنی زندگی سگ داشته در آزم. این مرد ایران شناس بوده. وقتی وقت هم کامپیتر نبوده ها. با دقیق، نشسته. تمام لغت‌های شاهنامه رو پیش کرده. یعنی در آورده که چند تا عزکان، چند تا در هست، چند تا هست. چند تا, هست، چند تا ایران چند تا پرچم هست، چند تا در عفش هست همه رو با تمام دارو و به نام نشان داده یک کتاب درست کرده به نام اندکت وولف یه قدری قدری از این بلندتره مثلا، این قدره و به این کلو توش تمام یه لغته معنی اون لغته یه مدت دارم شمارد. در دوره پهلوی اول حکومت آلمان برای اینکه رشوهی به دولت ایران داده باشه، محبتی کرده چون با اینکه این یهودی بود، کتابش رو چاپ کردن. این چه رس چاپ کرد. و در سال 1316 چند سال پیش میشه؟ 60 سال پیش که برای اولین بار کنگره وینول المرالی برای هزاره هزارمی سال فیلدوسی در تهران برپا کردن حکومت آلمان هم چاپ شده این کتاب رو کرد اون پنگره و بعد از او یک بار دیگر هم این کتاب چاپ شده اخیرن مثلا چهار پنگ سال پیش حافظ هم همین کار کرد همون حافظ 5000 رو کم‌تره شاهنامه 60000 فرق داره ولی فهرست رو دوباره هم تا شده حالا من به شما بگم که این چه فایده ای داره شما می‌خواید ببینید پرچمت در شاهنامه اومده یا نه همین می‌شید شاهنامه رو از اول بشینید بخونیم تا آخر ببینید پرچمت نه اینه یا کجاست هیچ حالا یه دونه رو این کار بکنیم، بکونید وقت نیست لغتش نمی‌تونید تا این کارو بکنیم؟ فرست والفوانتن میگه که چند بار اومده و کجاها اومده و به چند معنی اومده معنی های مختلفش هم جدا کرده گفته اینجاها به این معنی است اینجاها به این معنی است این جای دیگه به این یک معنی بر در حقیقت این مرد خودشو فدای محققان بعدی خودش کرده یعنی وسیله کار برای اونا فراهم کرده الان شما هر کلمی رو بخوام ببینیم در سانو ما یا نه فیرس وولف و نیگاه من در زفی دو دقیقه به تو که کجا هست چند بار هست یا نیست یا به چند منی این مرد عرض کردن چون جهودی بود خیلی باش بعد رفت کردن و همون وقتی که تا رو ستاق برای رعایت دولت ایران دولت رضاستا تمهالات هم داشته آلمان ها و معامله داشتن باشون اشان چیزی برای این کار میشه همون وقت رفتار بسیار بدی با این پیره داشتن و توی یک زیرزمین نمناکی این بد زندگی میکرد زندگی بسیار بدی و سختی وقت به رزاشا خبر دادن که این مرد که این خدمت رو کرده اون با این که نداشت ولی آدم خیلی آدمشناسی و خیلی آماده بود که کار مهم و فوری تشکیز دید سم نار عرض برای زیارت کربلا و مکه و کسی نمیدازن دقیقه همه کسی نمیدازن تمام پول عرض و اختصاص دیده بود برای وارد کردن آهن یا راهن. مقدار قابلی پول نمیدارن مثلا 20,000 کنه اون روز که پاند انگلیسی که اون وقت اولین پول دنیا پانده می‌کنیدید پاند دو طمان بود گویا طمان گویه 20 هزار پاند حواله کرد که بدن بگیش متاسفانه اون هم مثل فردوسی در سرگذشت فردوسی لاباد چنیده میده که فردوسی بعد که محمود پشیمون شد و نمیدن پول فرسا که نمیدونم یه درست نه ولی وقتی اون پول رسید که فردوسی مرده بود این پول در به اون خود. طولی هم که رضا شا برای وولف فرستاد همینطور، خیلی و دردش بیچاره نخورد و دیگه حالش، بد. <تصفيق> و این فهرست رو بهتر که شما بشناسید و بدونید فهرست حافظم که درست کردن برای همینه که شما ببینید هر کلمه چند بار اومده، کجاها اومده، به چه معنی اومده و این خیلی مهمه برای کسی که تحقیق نیکنه و باله یه مطالبی هست، دنبال یه مسائلی هست خیلی کارش آسون میسونه، خیلی زیاد برها حال گلت هم نیمتکاری کرده اینو من اون پرچم و اینا پیش آمد گفتم برای تون بگم برای اینکه درس واقعی این مسائلی به شما سیارتون باشینو بدین احیانا من خیال می‌تونم که برید یه روز قرار بذارید با این آرش برید توی ریفرنس روم و این فیرست بولت رو ببینید اینکه اگه بلید خودتون ببینید و برق بزنید بعد اگه ای وقت ایتی هیچ وقتی اگر عمرتون یادتون نمیرین چون کتابی رو دیدین و چجوری کجا هست و میرین ای سراغ این از یه زیبور رو بایدم اگر به نظر اون طور ریفرنسون باشه ولی میتونی قبلاً از تو تو هم بپرسید که کجا البته بیرون نمیدن باید بریم همون جا ببینیم، این خیلی کتاب مهم نیست، اهمیت از خود چهانان کمتر چندتر واقعا نیست از نظر تحقیق در کار شما همیشه به همین دلیل با اینکه این فقط این کتاب مال دانشمندان و مال کتابونه ها و ایناس مردم عادی اصلا با چون کتاب کار ندارن برای بار دوبا هم چاپ شد کتاب اون گندگی، دوباره چاپ ش اختر کابیان رو ولی از اینجا بر میاد ببینید می فهمیدنم معنیش اینه این که بخونیم به بیت معنی کنیم من نداره ببینید از این بیت همان پنج موبت از ایرانیان برفراختن دختر کابیان از این بیت بر میاد که درقش کابیانی دست موبدان بوده دست آخونده بوده اصلا تحویل اونا بوده یعنی توی معبد اونا که اونا خودشون می آوردن, خودشون هم بلند میکردن این که همان پنج میگه قبلا همان، همان <متحد> <قره> قید تأکیده یعنی <متحد> همان یعنی هیچ ماننده چیز نیست یعنی همان یعنی اون قبلی ها نیست مان از مانستن ها یعنی نیک ماننده یعنی دقیقا این طور بود چه همان پنج موبت از ایرانیان بر افراختن. افراختن و افراشتن هر دو شکیه بلند کردن همان پنج موبت ایرانیان بعد افراختن دختر کافیان بفرمود یعنی شاه یا حتی که از دستو داد تا جمله بیرون شدن به پهلو سوی دشت و شدند. شدن گفتم پهلو رو به عنوی شهر میگیره خب میگه لشگر خیلی زیاده تو گفتی که اندر زمین جایی یعنی همه جور گرفته بود سپاه تو گفتی عدات تشبیه کسی نیست که بگه نه توی هست نه گفتی. تو گفتی یعنی مثل این بود که مثل این که الانم نیگید گویا یا مثلا فلان جوره گویا فلان جوره گویا یا یعنی مثل این که یک معنی نید. گفتن اینا نمی که تو گفتی که اندر زمین جاییست یعنی مثل این بود که روی زمین هیچ جایی که برخواه که اون نعل را پاییست نعل اصلا به معنی کپشه شما ما در فارسی عادت کردیم که نعلو به معنی اون چیز آهنی که گاهی زیر کپش آدمیزادن میزنن یا بیشتر به پای و اینا میزنن اون رو میزنن نعل اصلا به معنی کپشه به همین دلیل هم این سندل ها رو میگن نعلین نعلین تصنیعه است دیگه دواله یعنی دو تا نعل یعنی یه جفت کفش چون در فارسی نمیگن کفشا کفش میگن دو تا هم میگن کفش ولی در عربی هم مثل انگلیسی و مثل بسیاری زبانهای دیگه میگن دو تا شلوار مثلا چون دو تا پاچه میگن یه جفت شلوار ولی ما در فارسی میگیم یه شهر باکی پتنیم نه نه، لغت عربی، چیه؟ در فارسی شده. چه دوکن؟ کسی طوره؟ چه عطره؟ اووووو فهصت جان، نه خیلی، عرفت کنیم این حرفو می‌زنن بینام، پس که باشه، این نظر علمی این درست نه نومین که، در لغت عربی در شانه خیلی و روی کم بودن عوام و ناس گفتن اصلا می کنید آنکه این صحیحی یا آقایی به اونم محقق اسم سوچیکم، اسم چی آقای محمد جعفر مؤینفر سالهای سال در فرانسه است و اونجا کار میکنه تحقیق می کنه. یه مرکز علمی است در فرانسه سینره است کار و این یه رسالهی نوشته به فرانسه تمام لغت‌های عربی شانه‌ها رو داره بود و این‌ها رو تبقه‌بندی کرده، تخصیم‌بندی کرده مثلا یه لغت عربی، لغت اسمای شهرهای عربی، مکه مادی. یه مقدار اسم اشخاصه، مثل عمر بسید، یه مقدار لغت لغتی بعد این ها رو درصدش رو داده، چیز کرده، جدور مثلش کشته، گرافیک کشته، خیلی رساله قشنگی به فنانسه نوشته و تمام این ها رو بیرون آورده، در حدود بین 700 تا 1000 تا لغت عربیت هستند در شامنه هست و این که میگم 700 تا 1000، تا برای اینکه نسخه های مختلف شامنامه هست فرق می کنید بنابراین دقیق نیست، اون نسخه‌ای که او گرفته کار کرده 700 تا لغت هست. حال اگر یه وقت خواستیم لغات عربی شامنامه رو اینکه به فرانسی بسید یا دیگه خیلی مهم نیستیم که به بسیده هستم ایسون آقای ما این فر میخواد یادداشت کنید لغت رساله‌ی عربی شامنامه رو در ورده رساله‌ی نوست که به فرانسی نه ولی ورد شاید داشته باشین الان راجعه سهرست تو بودی که حت آره توی ورف اتمن همست اگر شانومه شاید ده هزار بکنم گم شده باشه شانومه که داریم پنجه هزار بکنه فردوسی بارها بارها گفته که شد سه هزار بکنیم و ما یه مقداری بیتای گم شده رو پیدا کردیم اینه که میگیم برای اینه که آقای همایی استاد همایی یه هفتت اشتر از یه شاعری به نام عثمان مختاری مال قرن دیوان عثمان مختاری رو چاپ کردند این عثمان مختاری یک کتاب حماسی داشته به نام شهریارنامه شهریار از اولاد رستن اون حسابی که خوششون شهریار نامه گم شد تفسیر صد بیت ارزش هست اینو آقای همایید چاپ کردند و اونجا فرمودن که 80 90 بیت اینو خود عثمان مختاری میگه اینو مال اینا اینو شاهنامه نیست بنابراین ما میتونیم یقین نشو باشیم فیلمی از چهره شانه گون. یه ما هم اضافه کردن که شناختن اون اضافه ها خیلی مشکل نیست. میشه در آورد و بیرون ریخ و این آقای دکتر خالقی همین کاری کرده. متای شما اینا رو میفرسین اون وقت درستون میمونه این تا آخر اخر راستن سیاوش تو برنامه شما سو. خود. اول شاهنامه من بعد در ده شرقی گفته بوده. شیعه امامی بوده بدون هیچ تردیدی چون در دوره‌ای که ایران شیعه شد سعی کردن همه شیعه این درست نیست سعدی مثلا شیعه نیست حافظ مثلا شیعه نیست بسیاری شاعران که اصلا خیلی هم متعصب بودن در نیگری مثل جامی، جامی خیلی تعصب کرده اصلا. اینه که نیست ولی بعضی شما هستند که قطعاً میدونیم که شیعه، یک فردوسی اینا حتی. البته شک یه عده گفتن در این مربوط به کدوم فرقه شیعه است. یه عده گفتن شیعه زیدی، یه عده گفتن شیعه اسماعیلیه، یه عده هم گفتن شیعه دوازده همامیه. ولی به عنوان بنده شیعه دوازده امامی و اینا مقاله نوشتن مطلب نوشتن و کار کردن ها کمی درباره دوازده امامی بودنش یه دوستی من دارم که هم دوره و با هم درس می در دوره دکتری در دانشگاه ادبیات دکتر احمد مهدوی دانقانی این یه شماره ای از مجله ایران شناسی رو به اصطلاح اختصاص من به بزرگداشت بنده و شمایل بنده رامون زدن و کانکی که مقاله نوشتن به من مثلا تقضیم کردن دکتر مهدوی یکی از اون افراد بود اونجا مقاله مفصلی بی صفحه سی چهر صفحه نوشته راجعه اینکه که فردوسی چه جورشتی بگید و ثابت کرده که شیعه در بعدم هم همه کتاب ها بدون استثناء مقدمه داره و در این مقدمه شاعر هرچی دلش میخواد میگه و معمولاً تمام کسانی که وقتی کسانی باوستهی به جامعه اسلامی هستن بلو اون که در دلشون اعتقاد نداشته باشن بهتر است که یعنی تکلیشون اینه که بگن که ما مسلمان میگه الان بنده که از پدر و مادر مسلمان شیعه دوازه به دنیا آمدن هیچ دینه دیگه ندارن ممکنه اعتقاد من نسبت به شیعه بودن یزید سسق باشه یا نباشه ولی به حجج من با سه به جامعه یه مسلمان ایرانی هم دیگه فهمید کتاب نمی‌بینیدم بعد رعایت مردمی که هستم اصلا بکنم بعدم شاعر حمد خدا می‌کرده بعد مت پیغمبر می‌کرده اگه شیعه بوده مت اماما رو میکرده اگه شیعه نبوده مت خرافه راشدین رو می‌کرده بعد مت پادشاه وقتو می‌کرده بعد کسی رو که با داشته بوده این کتاب درست کنه تا ما چاپ که نبوله که ناشر میگه کتاب چاپ کنه که یه آدم یه چیزی میداده که این شاعر زندگی کنه این کتاب رو بسازه درست کنه بعد هم مینوشته نسخهشو میداده بهش اونو مدلیه هرچی به می خودش میخواد دیگه مطالب شخصی خود چون در مقدمه و همیشه مقدمه رو بعض این کتاب تموم شد می نویسن. الان هم یعنی کتابو چاپ بنده علیه کتاب زیر چاپ دارم چاپش تموم شده یعنی همه, همه این کتاب چیدن من مقدمش هم منوشتم خب بگذاری تو گفتی که هم در زمین جای است که برخواه که اون نعل را پایی نیست سرم در سپه اختر کابیان چون ماه درخشنده هم در میان روشن دیگه که اشکالی ز پهلا و را رفت کابوس شاه یکی تیز برگشت گرد سپاه یعنی از شهر که آمد بیرون به سرعت دور سفاه کردید در حقیقت یعنی سفاه رو دید دید که چجور نیستن وزشون و سلاحشون و و مرتب بودنشون و اینا رو دید دور سپاه گردید، یعنی بازدید کرد سپاه سپهلا و برون رو یکی تیز تیز یعنی سریع برگشتم اینجا برگشتن معنی بازگشت نیست برگشتن یعنی گردیدن. یعنی به سرعت دور سپاه گشت و چون خیلی سفا خوب مرتب کرده بودن به کسانی که این سفا را آنجا آفرین کرد یکی آفرین خواهان فرمای یکی آفرین کرد فرمای پی که اینا هم داران فرخونده پی به سردارا میکنیم. مبادا جز از وقت همراه اتان. میگه هیچ چیز جز وقت یعنی وقت نیکو همراه شما نباشون آرزوی سعادت و خوشبختی باشون شده تیره دیدار بدخواهتان دیدار اینجا یعنی چشم دیدار یعنی بیننده این چشم شده تیره دیدار بدخواهتان به نیک و تند و شدن به پیروزی و شاد باز آمدن در حقیقت آرزوشه میگه شما با اختر نیک با ستاره سر بریم و با پیروزی و به شادی برگردیم تو بیت وقت میبینیم که دل کاهوس هم گواهی میدهده که این سفر بازگشترش نیست خوزان جاگه کوست بر پیل مست به گردان بفرمود بر کول بست بر پیل بس به گردان بفرمود و خود برمیشد کوست کوس جنگی، کوس موسیقی جنگی ولی ضرب زرخونه هم بهش میگن کوس ضرب زرخونه شبیه دنبک با سه فرق یکی یکی دایرهش خیلی وسیل این فرق میکنه صداها دایره کوس، اینقدر دایره دنبک که نه خیلی کچی درده دوبام تنه دنبک چوبه تنه کوس گله صفاله مثل کوزه او این باز این در انعکاس دادن صداق خیلی فرم ثبام این که تنه دنبک بلنده خطش مثلا همقدره کوس خطش نکنه یعنی تنهش کتاست گردن میشن ولی کوسی که برای جنگ این نیست اصلا یک چیزیست مثل کاثه اینه کاثه کاسه خیلی بزرگ که روش پوست اون رو کاثه و اینو میبندن روی پشت چطور یا پشت اص و اون بالا یکی نشست رو میزنه با دست نمیزنه با چوب این هم که زاد زرخمه را و کوس زرخمه را با گفت که کوس بر پیل ببندن کوس خیلی بزرگی بوده که دونی پیل بستن جاگه کوس بر پیل بست به گردان بفرمود و خود برنشست یعنی هم به گردان دستور داد و هم خودش برنشست یعنی سواره است. گفتن برنشستن این یعنی سوار افتاد به گردان گردان یعنی پهلوانم هم به پهلوانان دستور داد دستور داد که چی سوار هم به پهلوانان دستور داد هم خودش برنشست یعنی به اونا گفت گفت برنشین سوار افت پیش به گردان بفرمود و خود برنشست دو دیده پر از آب، کابوس شاه همی بود یک روز با اون براه میگه کابوس گریه کنان، یک روز با این رفت طرف جایی میشه اون گریه سرانجام مر یک را کنار گرفتند هر دو اون را عربه با هر بنگده میشه سرانجام مر دیگر را کنار گرفتند هر دو کنار گرفتند یعنی در آخوش گرفتند برای ودا کردند سرانجام مر دیگر را کنار گرفتند هر دو یعنی سیاه شد که که چه ابر عبر دیده زدیده همین خون فرو بیختنند. هر دوشون خیلی گریه کردند به زاری خروشی برانگی ایخ درن می‌دونی که گریه افل وقتی هم گریه می‌کنن نداره ولی اگه وقتی شدید بشه وقت از بلند می‌شه می‌گه که خون از دیده‌هاشون ریخ درن و فریاد بدن از زاری خیلی سخت گریه کرد چی توسی؟ مرد هیچ چی نیست؟ مرد هیچ چی برای تحکید پیش از محبول بی‌واسته می‌آد مرد را، مرد مرا، حتما را خوش در شد مرد دیگر را در کنار کنفتن یعنی یکیگر را در کنار کنفتن زدیده همین خون پرو رو ریختم ازاری خروشی برنگیختم چرا؟ گواهی همین دل دل فرشدن که دیدار از آن فت نخواهد کنفتن دل حضرشون گواهی داد بعد خواهی میدید در داستان سیاوش که سیاوش اصلا با مابرا و طببی ارتباط داشتینیه حالت روحانیتی داشته و یه به چیزایی بهش گفته می تمام تمام سرشته خودش رو پیشکیی میکنه تا به زنش میگه <تصفح> که من اینطور خواهد شد اینطور خواهد اینطور خواهد شد بعد بهتر من اینطور خواهد شد این کار خواهد کرد کسی خواهد آمد چنین این کار خواهد کرد تاککیف تو هم این است که این کارو بکن بنابراین سیاوش یه روحانیتی داره. پادشاه هم چند بار اینجا به شما گفتن که معتقد میزن در ایران قدیم که پادشاه بهش الهام میشه یعنی به دلش آگاه میشه افلش. میگه که هر دوشون دلشون گواهی میداد که بعد از این رفتن دیگه دیداری نیست گواهی هم داشت دل بشتن که دیدار از انفرس نخواهد بودن چنین از کردار گردم در روش دنیا همینه گهی نوش یا از اون گاه دخل گفتم چند بود مثلا شیرین زن خسرو پرویز در زبون هرمنی بهش میگن آنوش آنوش یعنی شیرین درست همین شیرین خیلی سوی گاه منها تابوت بود گاه من تخت توی گاه ها تا بود توی سیاهوش عبالشگر جنگ روی سفه را توی زابلستان داشته است؟ هست که روستم بوده سیاهاش هم بوده توی این سفه وقتی میان اول میرن به زابل برای اینکه رستم هم با پدرش و با خانوادهش خداحافظی بکنه و مدتی هم اونجا بمونن برای اینکه سیاهوش در زابولستان بزرگ شده بود گفتم روستان پرورش شده بود بنابراین علاقه داشت با همه خانواده روستان خانواده خودش علاقه داشت این است که قبل از رفتن میان اول میرن به زابول سپه را زابولستان کشید ابا پیلتن سوی دستان کشید فیلتن مراد روستانه دستانم مراد زالب یعنی با. با در پهلوی اود اپاک اپاک اول که به اپا بعد هم شده با خیلی در شاهنامه در چیزای قدیم اپا و ابی و عبر به جای با و بی و بر به از مختصدات سرکای قدیم داستان رو من قبلا بهتون چند بار گفتم که دستان چند تا معنی داره، یکی جمعه دسته، یکی یعنی نبا و یکی معنی مک رو خریبه و یکی هم اسم زاله، اسم زال رو دستان گذستن یعنی که آدم هیلگر است برای اینکه دشمنانش، نه اینکه زار باشتی، مرخ اعتباط داشت و وقت بیچارگی از اون کمک میخواست و سیمو میامد و فمکش میکرد و راه نمایش میکرد این است که دشمنانش میگفتن این اصلا جا دیگره بنابراین دستان چون موانی هیله و مکش و فریبه اسم زال هم گذاشتن دستان این اسم خوبی برای زال نیست ولی خب معروض شده بوده اینچون که دستان و رستم دستان یعنی رستم پسر دستان دستان اسم زال لغب زال سفه را سوی زابلستان کشید، عبا پیتن سوی دستان کشید همی بود یک ماه باروند و می به نزدیک دستان فرخونده پی یک ماه اونجا موند رود ساز زهیه مثل, مثل ستار فیدیون بارما، بارمان کشیدن بشکر تو باد تمام سهرم بود و بارمان فیش خبر شد به دیشان به سالار نو که آمد سفاهی و شاهی جوان از ایران جب پیلتن فهلوان جب پیلتن فهلوان ایونی به نزدیک افراسیاب طرف جنب برسان کشفی برای که آمد از ایران سفاهی گران سفه فرس زیاد و با او فران سفه کشف شد رستم جب پیلتن به یک تا خنجر به دیگر کفن تو لشکر بیا رایو چندان نفای که از باد کشتید <تصفيق> به جنبت جا برنگیخ برسان آتش هیون که از اینسان سخون داد از رهنمون بیا از این به پاسخ نمان کوی برد چون باز لشگر بران تو تنگندر آمد از ایران تفا، نشایرست کردن پاسخ نگاه نگه کرد تثیب بعض جنگ جور شد از جنگ جن مدیدت ن این تو ایران سپاه اندر آمد به تنگ به دروازه برق و ساف جنگ دو جنگ گران کرد شد در کرده شد. شد در تو روز بیا آمد سیا بخش گیتی فروش پیاده فرستاد و حرفری و سپخ در آمد گران مشرری. با ریزان سفه رمدان روی. روی آب بشد با سفه نزد افراسیاب اگه تو موشه خبر این بود که افراسیاب آمده به خاطر ایران بازه هم میدونم سفه بود فلخ یعنی هرات نامه، اون روز جزئه ایران بوده ایران بزرگی و افراسی ها آن سوی آب دید یعنی اون طرف سیمونجهی های خوش ساجی کست حالا البته خیلی جغرافی شانومه خیلی دقیق نیست برایی مثلا میبینه که اجزایی درست نیست اما به هر حال حالا اینجا اینه چون یک ماه بگذاشت یه ما زال اینا در سیستان چون یک ماه خود زد کشکر بران گذفیلتن رفت و دستان به ما رستم با تیافهش رفت زابول هم از کابل و هندوان سپاهی برفتند با پهلادان هم از زابول هم از کابل هم از هند کابل خیلی نجدی که هندوان. بیشتر مردم اون طرف که نزدیکای کابل، اردو بلدن ربون هندی رو بلدن عکدن به خصوص یه جایی هست در افغانستان نام جلال آباد که در مرزه اون که اصلا آقا هوا و اینا همشت چطیه هنده اصلا این هست که اونجا همسایگی دارن این که میگه از کابل و از هندوان با او رفتن اینا خیلی به هم نزدیک شد زست آبول چی؟ کابل؟ کابل کابله دیگه زابول هم زابول به و به هم بدل میشه دیگه زابول هم از کابل و هندوان سپای گرفتن با پهلمان زه هرسون که بود نام و لشکری و بیامد به شهر حریب هرچه لشکر بود صدا کرد دعوت کرد و خودش آمد به حراب خوزیشان فرافوان پیاده بورد از شهر حیرات پیاده زیادی بورد و در راه این پیاده ها را سپرد به زنگه شاوران یکی از سرداراش زنگه نیست به راه زنگه شاوران را سپرد سوی طالقان آمد و مرورد الان یه طالقان از این تحرون داریم به من سفری که سارکیشت و بودن... سال پیش نبود همین سال خودمون همین امسال رفته بودم بودن رفتم راه قذبین از چرچ که میتاری رد میشید اه... نزدیک آب یک به سمت قذبین که میدید دست راست جاده جادهی هست که میره میره به طالقان پس که ها جای باسفای قشنگه درجه یکی هست و والده شما مارو برد که عرض کنم که اما این طالقه میگه در افغانستان امروز از که مرد و این ها. است. این دلیلش این است که مردم وقتی مهاجرت میکنن میرن اسم جاهاشون هاشونو با همین میبرن همینجا در امریکا چقدر نیو مکسیکو نیو همشاید کمبریج نمیدونم این با سوم از نیو اورلین اون شهر فرانسه ای اسمای شهراشونو حد تری میون ما بودن اینجا یه دکه باز کرده بابایی در والنات کریک اسمش میشه بازار تجریش <تصفح> بازار تجریش برین تو راه خان اینا اسماشونو نمیبرن بنابراین هیچ اشکالی نداره که مثلا 4 تا کرج داشته باشه یا 4 تا طالقان باشه از یه که میرن یه جای دیگه دوره همون اسم اونجا میورن و همینطور هم این طالقانی که فیضاوسی میگه با این طالقانی که در, در شمال غربی تهران واقعه فرق داره سوی طالقان آمد و مرورود نمیدونم الان مرور جز خاک افغانستان است یا نمیست که نیست مرور الان جایی هستان ها مرب و رود بهش میگن، رودخونه مفصلی هم اونجا داره که داستانهای زیادی داره الان به نظرم در ترکمنستان اونجا ها قرار گرده، در افغانستان نی برحال مرب هم از شهرهای قدیم ایرانه سوی طالقان آمد و مرب رود سپه داد گفتی درود مثل بود که حالا درود اگه منی خداحافظی باشه یعنی مثل این بود که سپر و او بهترود میکن اگه منی نیایش و اینا باشه چون شاهزاده خیلی آدم خوبی بود و گفتم محسوم بود و انسان بود و بیگناه بود اینه که میگه سپر به او درود پوزان اوزانفستی آمد به نزدیک بلخ بلخ در مرز افغانستان الان شهر کونه بلخ نزدیک مزار شریفه به جایی دارن در افغانستان جایی بسیار قشنگ واسفایی اونا هم مزار شریف که معتقدم قبل علی ابن عوی طالب اینجاست قبلی هم که معروف اونمال علی ابن عوی طالب در نجف این در سال مثلا 800 اینجورا یک کسی اونجا گفت من خواب دیدم کسی اومده و قسطش هم نوشتن که اومده و گفته که اینجا علی ابن عوی طالب در و جامع شاعر معروف هم یه شعری ساخته که به هر حال علی معتالب علی معتالب به همه جا هست. اگر اینجا بیاد به زیارتش و به نیت زیارت به زیارت بیاد زیارتش اینم بازم به اون میره. بنابراین اشکالی نداره. جای بسیار باصفایی است، مزار بسیار بسیار دلواز قشنگی است و هزاران هزار کبوتر اونجاست. یه دونهش کبوتیه، تمامشون فقط بدون است و مردم میان اونجا برای تیمان توروش به اینا دون میدن یعنی میان خورای اونجا در مزار شریف و هر کسی توریستی کسی که میاد افغانستان به خود اگر مفرمون مشته حتما شریف میره ما رفتیم مزار شریف اونجا رو زیارت کردیم بعدم رفتیم به بلخ کهنه که دیگه بیرانه شده البته. از از از از از از از از نیاذر کس را به گفتار تلخ سیاوش هیچ کسی رو با گفتار تلخ آزار نداد وزن پس وزن وزن سود و بارمان کشیدن لشکر تو باز زمان معلوم میشه که سپاه افراسی ها به سرداری جرسیو بس برادر افراسیاب بوده و بارمان این بارمان اسمش رو در داستان رستم و سهراب هم می‌کنید افراسیاب دو تا سردار رو به نام هومان و بارمان انتخاب می‌کنه و سهراب رو می‌سکره دست اونا و می‌بینید که ببرین و ظاهران کاملا تحت عمرش باشین یعنی مثل نوکرش رفتار کنین، مثل زینجدستش رفتار کنین، اما کار اصلی شما اینی که به هیچ وجه نزارید که این پدرش بهش نسید بارمان اونجا هم خوزانسوی از لشکر احتاسیات کردی و از بارمان کشیدن لشکر چو باد دمان روشن. سفهرم بود و بارمان پیش رو روشن پیش رو استفاه این دوتا سردازد سفهرم و بار. خبر تو د دیشان سالار نو خبر به اونا رسید که از ایران آمدند که آمد سپاهی و شاه جوان از ایران جاو پیرزن پهلوان میگه سپاهی از ایران آمد با شاه جوانی پهلوان این سپاه هم رفتن شب من این اسم معنی کنه که اینی تو من نمیدونم البته حتما بنده یک شخصی هست به نام یوستی آلمانیه اسمش هم اینگلین کتاب داره به آلمانی به نام نام نامه تمام اسمای ایرانی که توی مداره که قبل از اسلام اینا آمده اینا رو همه رو ایتیمولوجی شو میده و معنی شو میده و میده و کتاب های خیلی مهمه مدارک که یوستی کتابش آلمانیه؟ آره شما میتونید بهش وجود کنید یه چیزایی ازش که خواهید فهمید برای مطلب اصلا ایرانیه باید هم خیلی استرازشون باید که میخونی میگید اینا کتاب های علمی خوندن شما مراجعش اینا مشکل نیست خیلی خب میگه که بلا فاصله و که خبر شد به به و بارمان که رستم و سیاهوش آمدن حیونی به نزدیک افراسیاب برفت کند برسان کشتی برای حیون گفتن حیبون درست اندام شطور یا عصف باقا میگه مثل کشتی برای پرستاد یعنی خیلی سریع پرستاد به افراسیاب خواهد چه بده که آمد از ایران سپاه گران سپاه گرانی از ایران آمد سفه بعد سیاوه شو فرمونده سفه با اون سران سفه کش تو رستم گره فیلتن به یک دست هنجر به دیگر کفم یعنی خیلی با ازن جنگ اماده بعدم گرسیوز به افراسیا پیغامی تو لشکر بیا و چندان متایی که از باد کشکی به جنبت این که انقدر متای یعنی سب نکن درنگ نکن میگه انقدر درنگ نکن که کشکی از باد به جنبه یعنی آنن لشکر و بیارای هیچ معطل نکن بوری بر برسان آتش هیون یعنی این اصف و خیلی به سرعت درستاد. که از اینستان سخونداش از رهنمون بران که استادش راه این طورش یاد داده بود که در مواقع مهم باید خیلی به سرعت قبر رسونده ایس کرد اینی که خیلی با عجله هم قاصد خود چه فرستاد چیز کرد که با عجله بفرست سفاه ها ولی بینیم که با این حال سفاه نمیرسه و اینا میزنن چیز رو میفرستن بیرون بشکر سورانو از مرزای ایران بیرون مستد سیاهوش از این سو به پاسخ نمان دیگه سیاهوش معطل این که افراسی ها چی جواب بده نمون افراسی ها باید جواب بده اینا فعلا تو منبکت هم باید برم بیرون سیاهوش از این سو به فاسخ نمان سو برخشون باید لشکر برم چون تنگندر آمد از ایران سپاه مخصود تنگندر آمد یعنی نزدیک شدن به سپاه طرف دیگه شد تنگندر آمد از ایشان سپاه نشایست کردن به پاسخ نگاه یکی گرسیواز ها وقتی لشکر رسیدند که منتظر جواب نمیتونه بازید نگه کرد گرسیواز جنگ روی جز از جنگ رستن ندیدی ایچ بود گرسیواز هم نگاه کردیدی چاره ای جز جنگ نداره هیچ رویحی ندید یعنی هیچ راهی ندید هیچ چاره ندید ندیدید. همون که ع میگم به هیچ وجه میگه به هیچ وجه و یر بودی به هیچ وجه یعنی به هیچ رو یعنی به هیچ صورتی هم به هیچ صورت یعنی به هیچ صورتی نتونونه جنگ جز جنگ کزی. جز از جنگ دوستا ندید هیچ رو تو ایران ستا اندر آمد به تنگ به دروااض بر فرسا جنگ سپاه ایران وقتی نزدیک شد دمه در وضع باب جنگ کردن دو جنگ گران کرده شد در دو روز بی آمد سیاه گیتی فروز پیاده فرستاد بر هر دری به بلخندر آمد گران لشکری گریزان سپه بدان روی آب بشد با سپاه عمل به اخواستیات زدن اینا بیرون کردن و اینا رفتند رفتن اون طرف آب انتخاب خودشون. بعدم سردارشون باید به شهر راستی ها بخور حالا، اینجا مقصودی که کابوس داشته حاصل خوده دیگه که آمد روزن ایرانی که رخوزنن، رد شده خاک تو هیچ موجه بیدی که برای جنگ نیست. دو طرفم آدمای خیراندیش، دو طرفم میون میفتن که آقا جنگ و خونریزی اینا برای چی می‌کنن دیگه؟ به اخره به همین ترتیب قراری بدیم و افراسی ها میگه بله، چی‌ز کنیم از اون طرف، از این طرفم رستم میگه که خب بله اگه ما چیزی گرفتیم، بعد افراسیاب میگه که ما حاضریم سر کنیم رستم بهش میگه که من از این مرد اسمیون ندارم. یعنی از افراسی ممکنه همه اینا رو برای خام کردن ما بگیم و واقعا قصدش این نباشید بخواد لشکرش برسه و بنابراین شما میگین رستم تجربه داشت شما میگین که اینست که نفر یا حال سرد نه یه از نزدیکترین خیش آوندان خودش رو پسر و پرادر رو بگیم ازدیکان خودشو گیروگان بده به ما یعنی بفرزه بیان فلو ما ما شام و نهار رو عزت و اطلاح ما همه اینا بشون ولی این نشون این هست که او سؤال میخواد. خواهد برای این که اگه بخواد بکنه اینا در دست ما باشن اگر نه دور راست بیاد که ما اینا رو آزاد بکنیم برم سیاه هم میگه خیلی خوب میگه بس بگید میگن و افراسیاب شما اگر واقعا راست و اگر حقیقتا پاستار سول هستید یه چند تا گفتم مثل 200 هست روگان که ما خاطرمون جمع بشه که شما قفل کلک دادن به ما ندیرد افراسیاب هم میگه چشم یعنی پیران بوده و حسالارش رو با اون حرکت میزن و اونا که خب پایلات دیگه معنی نداره این هنوز هنوز خون ایرج نخوابیده و کینه و عمضه کافی بین ایران توران هست حال دوباره جنگ و سفیز اینو چه فایده داره بر کنیم این تموم بشه شما که قصد میخوا بفرست میفرسیم میفرسن؟, میفرسن؟ یه نامه هم می به پدرش که ما همونجور که دستور داده بودیم اینا رو بیرون کردیم از ایران برای خوند و پیشنهاد صور کردن و ما هم فکر کردیم خونیده بیخواد خواهده نداره و حالا پیشنهاد که این سوچیم راستم میگه که اینجا یکی از بدبختی ها همینه راستم هم میگه که کابوس آدم مزحرفیه آدم تندیه و ممکنه اگه کسی دیگه بره اینو چرتی جواب بده و چیزی بده و خلاصه کار خراب کنه بهتر است که خود من برم مطلب قادش برم رستم میاد با نامه سیاوش که مطلب رو با ارز شاه برسونه که این توسود این توسود وقتی نامه رو میاره بازم این مرد عبله اعترام رستمی که بارها اینو از مرگ نجات داده و ده نگه نمیده میگه تو حالا پیر شدی؟ تنبل شدی؟ خودت برای خو... دنبال خوردن و خوابیدنی؟ این فچرم پرسید دنبال خوردن خوابیدن؟ و این حرف ها رو تو یادش دادی من فرستم جنگ کنه در حالتی وقتی که این حالت بیرون کن من گفته که جنگ دام برده بره من فرستم اونجا جنگ کنه تا اینه که دونستی اونجا میگیره بخوابه این من فلانه و نه غلط کرده و خلاصه درگیری با کابوس و رستم قرر میکنه این حالتی اگر رستم بود نمیذاش سیاقش بره به چیز بره به توران و یه کار دیگه ولی نبود، دوستان هم نبود و اینو همه قدم های، دونه دونه که در تجیدی باعث میشه که قهرمان به سرنوشت ناگزیر خودش برسه دوستم می‌ذاره میره که کابوس هم می‌نویسه، بسرش که بسر ای خر من به تو بردم تو بری جنگ کنی، رفتی یه بی ارزش مبینم آدم های پران چهار تا هممال رو دادر تو تو گروگان گرفتی، اونجا گرفتی نشستی، تمام هدیه که آوردن آتیش بزن اونجا این قمخشای اینم بفرست من اینجا دارشون میزن، به خود تمزن سیاه قرار بودتو که حساب کرد بودتو کتاب کرد بودتو داشت، داشته دوستن بود، بودتو خودشاه اینجوری کفت ده بعد کسانی که اونجا گرفته قول داده که اینا گروگانند پیش من و من امنیت اینا رو تضمین میکنم و تهمین حال حالا که آنن میکشنشون و حاضر نیستی که اینجورو بکنی طبیل خلاصه آخرین راهی که به نظرش میرسه این است که گروگان‌ها رو بفرست سراغ و افراسی ها که این پمشتون مال خودتون اینکه اینجا من دیگه نمی دیگه اینجا دیگه سپاه ایران درس می سپورد و بهران و با افراسی ها می راهی بدین منجر رد چند تو ایران نه؟ بعد البته پیران فراسی ها میگه این موقعیت خیلی خوبیست که دکتر این شاهزاده ایرانه اگه بیاد تو اینجاش محبت کنی نگه اتاجی بکنی بعد تابوس پیره بلاخره خواهد مرد و تا ایران مال این شاهزاده است این روابطش با ما خیلی خوب خواهد بود و دیگه ما گرفتاری بین ایران، ایرانسوران نخواهدیم بنابراین من صلاح میدونم که تو بپرد بیری، خواهش شد بپرد بعدم بعد اصلا بری جایی که همینجا هر قسمتی، هر خاکی، هر جایی که میخواد برای حکرانی بدی در اختیارش که اینجا در توران باشه تا وقتی که رابطش با پدرش ساخت بشه بره و بعد کلکم میدازه که با وجودی که دختر خود چند داده بوده و به سیاوش دختر افراسیاب هم براش میگیره به زنی بگه که بهتره که شما پیوندی داشته باشین پیوند خونی داشته باشین که رواقت محکم بشه دیگه خطری به اصلاح نباشون افراسیاب هم اول اینجا اون پسر دشمنه نمیشه نباید این کار کرده نه ولی پیران اسرار میکنه و خلاصه پایس میشه که دفتش رو میدوه سیاوش و سیاوش در قرآن مونه پا باشه البته من که مثلا جوزولو رفتم و واقعاً پا اونجا خیلی راهه ولی خواستم که بدونید که جریان کار چی به اون یچن به من دیگه حاضر نگردم حاضر نمی‌شم. توو کو؟ سیو باز تا بळش با سپا یکی نامه فرمود نزدیک شاد. نوشتن به مشک و گلاب و عبی چنان شد چنان شد تزاور بود بر حریر. نخست آفرین کرد، برکردگار، کزو گشت، پیروز و بروزگار به، به، روزگار حالاشم که چیز بذاشته خداوند خرشید و گردند ما، فرازنده تاج و تخت و کلاه کسی را که خواهد برآرد بلند کسی را خواهد برآرد بلند. کسی را کند سوگوار و نجند چرا نه به فرمانش اندر نه چون خرد کرد باید بدین دین اگان دادگر کو جهان آفری عبا آشکار را نهان آفرید. چنان آفرین باد بر شهریار همه نیکویی باد جام کار به بل خامدم شاد و پیروز بخت به فر جهاندار با تاج و تخت سه روز اندر این کار شد روزگار چهارون ببخش شد پروردگار سپهرم اسمی سپهرم به سپه ب... سپه اسم. سپه شد و بارمان بکردار کردار بکردار به کردار ناوک به جذب از کمان ناوک هم اسمی؟ ناوک تیره، نوی تیر به کردار ناوک به جذب کنون تا به جیهون سپاه من است جهان زیر فره کلاه من است به سخته از با لشکر، سخت اسم شهر مستیم به سخته از با لشکر افراسی آق سپاه و سپه بد بدان روی آق گیندونک فرمان دهد شهری ها سپه بوزرانم کنم کارزار بسیار، بسیار برخواه میگه اینا وقتی رفتن نمیشه، ها می نمیسه سیاهوش خورد اینا رفتن و جنگ کردیم و در رفتن و جال کنم میگه تو در با حالا چی می فرمین؟ اگه فرمی من برم جنگ کنم اگر هم میگی نه چون اینا رفتن از مرز ایران میگی نیستن بیرون اگر هم میگی نه تو فرمین سیاهواش در بغت شد با سپاه یکی نامه فرمود نزدیک فرمود یعنی دستور داد یکی نامه فرمود نزدیک شاه نوشتن این،, این نزدیک شاه میچست این نوشتن یکی نامه فرمود یعنی دستور داد یک نامه نزدیک شاه نوشتن به مشک و گلاب و چونان چون چونانچون سزاوار بود بر نامه نامر اوی حریر با مشک و گلاق نامه نامشا باید خوشبو باشید من خاطرم هست که در دوره پهلوی اول اسکناس ها اسکناس ده تومنی روش نوشته بود یک پهلوی که الان نمیم چهار زار نشطور یک پهلاوی، یعنی که میخواد اسکناس تا اتوانی داد که و گفتم که دوتومن معادلی پاند انگلیسی بود اسکناس ها بوی عتش میداد پاندش یعنی عتش میزادن دست مردمون خوشکون خون کردی بوی خوش. ولی که پول ارزش دار بود دیگه هاستان که چیزش هم به هر حال ای که برای شاه امپراتور میگه بودنده نبات باشه که یک دوم که معمولا نام‌ها روی پوستی نوشتن و پوست بوی بد میدادن خیلی بد داشت الانم بوی چرم اینا خیلی بوی خوبی نیست میگه میتونید میگه که روی حریر نوشتن با مشک و گلاب و عبیر هم نوشتن که خوشبو باشه نامه نوشتن به مشک و گلاب و عبیر چنان چون تزاوار بود که شایعه بود برحال وقت اینجا شما مثلا ست تا نامه توی چهانمه اگه تمامش فرمول داره و این فرمولا خیالات نیست اول نامه ستایش پروردگار نخست آخرین کرد و کردگار که از اون گشت پیروز و بهروزگار پروردگاری که پیروزی و بهروزی ما از اوست. خداوند خورشید و گردنده ما فرازنده تاج و تخت کلاه خدایی که صاحب صحابه خورشید و صاحب ماه است پدیدآورنده ایناست و فرازنده تاج و تخت یعنی جل بدهنده و چیز تمام کسی را که خواهد اینو صفات خدا رو میگهند کسی را که خواهد در بلند از کسی رو کسی را خوند سوگوار و نجم یکی را به اراده خداوند تعلق گیره می بلندش میکنه یکی دیگر هم سوگوار میکنه ازادار میکنه و نجم میکنه یعنی خمکی میکنه از آن دا چرا, چرا نه به فرمانشان در نچون که میتونه منی فرمانش درش چراغ چون نیست نه چرا در فرمانش هست نه چون چرا نه به فرمانش اندر نه چون خرد کار باید بدین راهنمون که باید عقل آدم به این مطلب گواهی بده که در کار خدا چون چرا نمیشه از آن داد گر جهان آفرید ابا آشکارا نهان آفرید چونان آفرین با بر شهریار همه نیکویی با پادشاه میگه این خدایی که دنیا رو آفرید و جهان رو آفرید و آشکار رو آفرید و پنهان رو آفرید از طرف این خدا آفرین بر شهدیار باشه همه نیکویی با پرجام کار اینم باز دعاست یعنی امیدوارم که آخر همه کارا خوب باشه الانم خوب شده دیگه تا اینجا به بل خامدم شاد و پیروز با. به فر جهاندار با تاسته میگه به فر فاچاه فا من با فیروزی آمدم در وقت سه روز در این کار شد روزگار در این کار سه روز صرف شد چهارم به وقت پروردگار روز چهارم خداوند من کرد چه کرد؟ پیروزی حاصل چهارم به دوست پروزگاه چه شد؟ سه به ترمز شد و بارمان با به کردار ناوک به جست رفت در شهر ترمز جایی خیلی است اون طرف آب در خاید توران با مثل تیری که از کمون به پره در رفتی گه کنون تا به جیهون سپاه من است مرز ایران توران جیهون سیهون میده کنون تا به جیهون سپاه من از جهان زیر فرق کلاه من به سقد از بالشگر افراسیاب سقد الان در تاجکستان و اون طرف اون طرف آب. به سقد از بالشگر افراسیاب سپاه و سپه بعد بدان روی آب که لشکر توران هم فرمانده‌ش هم خودش هم سپاهش اون طرف آوند. گریدون که فرمانده حض شهریار سپاه بگذارنم کن کار داره. اگر پادشاه دستوری من منم لشکر رو از رود رد بکنم و دنبال جنگ بگردم. اگر هم میگه نه که نکن. بله پس ما چون اون اونجیه اختلافه همون واسه سر کشش نمیرج میاد که من الانم گفتم که هنوز دیگه خون ایرچ نمخواد نه نه در حقیقت در حقیقت من